نردبان جاودان وصل مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت موضوع سخنرانی اسرار حج جلسه دوم بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین صدب شرح صدری و یسر لی عمری و حدود عقودت و خود و ما توفدی و ال كل ادامه بحث دیشب رو من باختصلم با توجه به فرصص و امکانات یک جیمسی که دیگهش الله بحث جاوجش بکنیم یه جایی بعد یه نشتههایی هم، علاوه قرآن چهار نقطهی که دیشب برست کردم در رابطه با سفر حج میتونم مطرح بشه. اون رو هم در حد تذکر ارز کنم و بگذرم بعد از عمل عمره که تقریبا جز فعیه بین سفر و مرغه بقیه رو اشارتن دیشب برست کردم از حج به من یک دست با توجه حدیث امام صادق علیه السلام و امام سجاد و حدیثی از خود پیانبر علیه السلام این نیت چیست؟ اینقدر چیست؟ میغاد چه داره؟ احرام به چه معنا میشه؟ طلبی گفتن با چه معنایی بودونه پیدا کنه؟ توافت چگونه؟ بیعت با عجر الاسبد یعنی نماز پشت مقام ابراهیم یعنی که؟ هجر اسماهیل رو مکاف قرار دادن؟ این که برداشتی از اون میشه اینا اجمالاً گفته سعی صفا و مرگه فقط در اونجا میمونه چون در بحث حج این بحث هست من یه دفعه از اینجا برم در بحث حج این نفته اونجا اشاره کنم با توجه به حدیث امام علیه السلام یا احرادی سعیمه علیه السلام و اون تزد کرده ما انشاءالله وقتی که برای عمل حج میخوایم بعد از گمره آماده بشیم نیت و احرام که مشخص مثل همو با تفاوت رسمیت که اون قصد نیتی که ذکر در اونجا برای و اونجا برای عمره و اینجا برای حج این نکته مسئله ای هست هم که باید همون هم در درو هست اما اولین عمل ما وقوف در عرفات هست ان از ظهر روز عرفه تا غروبش که واجب است بر هر حاجی از هر کجای عالم که اومده در اون محضبته خاص عرفات وقوف داشته باشه فقط توقف عمل دیگه ای نداره خب حالا اون مقداری که روایت رو گفته ارزم کنم نه اینکه ما راض شد امثال بنده بتونه به فهمه توقف چی؟ عرفات رو که از ریشه ارفان، عرفه، معرفت و شناخت همه از این گرفته میشه گرفتن این که در ریشه های تاریخیش وحد کردن حضرت آدم و بشر وقتی که از آسمان یا از بهشت اون مرحله بالا برای اصول خارج بشه و حبود داشت مکانی که در زمین فرود آمد عرفات بود اولین مکانی که پای حضرت آدم رسیده در حادیث اینجوری اشاره شده اومده و در تحقیقات تاریخی تو اون مکان عرفات میده به چه جهت اون مکان رو عرفات نامگذاری کردن؟ چون ما در قرآن که نگاهم کنیم آدم عبول بشر اون ترک اولا رو که انجام داد گناه نبود ترک اولا بود ندا اوندتا آدم چه کردی؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا خدا یا بد کردی؟ اعتراف ده. خودشو کوچه کرد، تواضع کرد تواضع نشون داد خدا یا بد کردن ربنا ظلمنا انفسنا خدا یا به خود سپن کرد. ولی ابلیس شیطان معروف وقتی که خداوند به او ام کرد که سجده کن به آدم سجده نکرد خدا سریح قرآن دارم ارزم کنم خدا وقتی فرمود ما منعک که انتسجدل ما خلق طول یده چی تو رو باز داشت از اون که من ام کردم به دست قدرت خود آفریدم که او رو سجده کنید نگفت خدا آقا خدا اشتباه کردم خدا غلط کردم خدا حالا میخوام برگردم ایتاد چی گفت در مقابل دا تردست عرض اینجوری بیان کردی یا عرضه داشت که خلق تنیم نار و خلق تهون نتین من از رو بالاترم، انا خیرون من خود آدم وقتی خدا فرمود چه کردی رب نازالا نانفرسن ادلیس ما منع که انتس ما لما خلق تو به یدی انه خیرون منه رضا ابلیس ابلیس شد آدم آدم شد عرفات مکان ایجاد این معرفته که آدم واضح به حال خودش شد یکی از ارزنده ترین ها برای ما ها طبق بیان روایت معرفت نسبت به شرایط خودمونه خود شناه بشید ما کجاییم چگونه باید بشیم؟ بین اونچه که هستیم و اونچه که میتونیم باشیم فاصله چیه؟ از کجا باید آغاز کنیم؟ آدم واقف شد در عرفات من کیم؟ و کجا اومدم؟ لذان میگرد و نازلم ناانفذانم لذان ناله که یه نکته زریفی هم اینجا داریم اینم از قرآن و حدیث استفاده کنم فدمتون کنم در صور بقره داریم وقتی آدم رونده شد خدا من الغا کرد و آدم کلماتی حتاب که در اثر اون کلمات توبهش پذیرفته شد نشیعه سونی هم نرد کرده مثل تفسیر درولمنصور سویتی که از علماء معروف اهل سنت که از قیقنبر قصیدن خدا چی یاد داد به آدم که آدم با اون کلمات توبه کرد خدا توبهش و پذیرفت گفت خداوند به آدم این رو یاد داد که خدا رو به اسماء خمسه تیبه قسم بده همونی که معمولا ما میخونیم یا حمید و به حق محمد صلی اللہ علیه و سلم، یا عالی و به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسن آدم این گونه خدا رو رفتان دارد گاهیم خود تو خودمون حالا کار نیکن را قیاس از مگیر یا ما لیسکه مثل به شیط و عبادی از بابه تقریبه به زیم و یه تو خودمون گاهی یه بزرگی شخصیت یه برگستی چیزی از اون می میگه این مثلا فعلا شدنی نیست میگه اگه فلانی رو پیشش بذاری یا او رو بزنه غیر ممکنه که نشه کما این که مثلا داریم در حاجت خاستن از امام علی السلام اگر ذکر مصیبت از زهرا سلام الله علیها بشه بعد امام زمان رو عزت و افترا قسن بدیم مگه صلاح ما رو ندونه غیبی به نظر میاد که حاجت رو ندارم. نام از زهرا رو وقتی که شما امام زمان ببری یه اسباب دیگه پیدا می‌کنه همسه ی رو برای خدا بخوای مطلع بکنی این حساب دیگه ای داره لذا آدم اینو خدا بهش یاد داد چون تو همه فروتنی نشون دادی خود متوجه ای که میخوای برگردی میخوایی بیاد این پنجتن ها واسه قرار بده عرفات این عرفان رو ایجاب کرد این معرفت رو ایجاب کرد لذا در حدیث هم برای ما اومده فرمودن اقف زلول معرفه معرفت المر علا امر نفسه عالی ترین معرفت پایینه که انسان نسبت به خودش معرفت پیدا کن قال علی علیه السلام امیر فرمودند فرمودن و امرئن علم من اینا و فی اینا و الی اینا رحمت خدا بر اون کسی که علم پیدا کنه بشناسه کجاست از کجا اومده کجا داره میره به کجا میخواد برسه چی کار داره میکنه آدم در سر در معرفت رو پیدا کرد. ما اونجا توقف داریم کار دیگه نداریم این توقف در سرزمین عرفات حالا با دستورات دینی ما مناسبت بدید میگن شب قدر از است که در فرهنگ ما جزء اوقات بسیار اساسی سرنوشتات قدر ما در اون معلوم میشه خودمون قدر خودمون معلوم کنیم کی از دینید لذا مرحومه عشق در مفاقی کتاب دعا و آداب راز نیازه یکی از اعمال ارزنده شب قدر رو چونجا اسم برن با توجه به دستورات معصومی علیه هم السلام مباحثات علمیه شب قدره شب دعاست مباحثات علمیه که اون علم در مورد همین مسائل خیب کمال انسانی که مطرح میشه میگن اگر شب قدر کسی آمرزیده نشود امید آمرزش نیست تا سال بعد مگر اون که روز عرفه در عرفات حاضر شود این رو بذاریم که نره هم شب قدر چیه؟ متوجه خودمون بشیم توبه کنیم، برگردیم، تصمیم بگیریم خدایا من وقتی به خودم مراجعه میکنم بیچارم اما حالا آمدم در خونه تون دازه میزنم همون جوری که آدم گفرد بنا زلم نا انفسنا اما ابلیس نگو، گفتانه خیرون منو، وزا ابلیس باید بخت شد، نکه رجیم شد، اما آدم آدم شد منم خدایا در شب قدر دارم قدر خودم رو، نه عرفات، عرفات هم مثل شب قدره یعنی این ارزش رو در سرزمین عرفات انسان میتونه پیدا بکنه، خدایا من میفهمم که چه بد کردم، چه سسلی ها داشتم الا میخوام به سمس تو بیام. لذا این تک از امام صادق علیه السلامه فرمودم و طرف یا به یا عرفات در عرفات اعتراف کن به خطاها منظور یه اعتراف مثل اعتراف مسیحیت پیش کشیش تو کلیسا ما این رو نبید. ما فقط با خدا رازمی می کنیم در پیشگاه خدا اعتراف داریم عرفات سرزمین زمین ارفان و معرفت پیدا کردنه افزل معرفت هم میگه پا تو بشن هستی؟ ولی واقعا را خودم خلوت میکنم چه ها که نکردم من اصلا برای بندگی اومده تمام تلاش دیگه در اصل من اینو شرمندم بگم چون تو زندگی خودم کنیست تلعت کنم بگم اما حالا برای اینکه به خودمان از سر بذاره دارم میگم اصلا ما در بینش دینیمون برای چی اومدیم دنیا؟ ما خالف تل جن بر انس الله نیع بودون دیم ما اصلا برای عبادت اگه تلاش داریم اگر کوشش می‌کنیم اگر دنبال کسب و کار می‌ریم به عنوان ابزار و امکانات عبادتمون که ابزار امکانات در اختیار باشه وگرنه اصل اونه خب حالا که اصلونه من وقتی به خودم مراجعه کنم به اصل چقدر لذا اونجاست که میگم خدایا همون جوری که به آدم در اینجا دست به سوی تو بلند کرد و نازل نموه منم وقتی به اینجا میرسم یه مقدار معرفت نسبت به خود پیدا می‌کنم خدای من چی کردم؟ کجا بودم؟ تمام پوشش های من چی بوده؟ و وقت بعدش خود امام علیه السلام چه زیبا دنبالش رو این کرد؟ حالا اولا اعتراف کردم خدای فهمیدم بیچارم دنباله فهمش چیه؟ و اعترفت یا به عرفان و جدد اهد که الله تعالا به وحدانیت یفه تجدید کن اهدت رو یعنی اهد بستیم با خدا کنار حجب الاسبد هم اهد بستیم قبل از حرکت هم عهد بستیم شما از اونجا لام عهد و خدا بستید حجه قسم خدا رو دارید می‌کنید حجی شما رفتینم من یه قسمه اما اونجا با اون معرفت تجدید عهد گون یعنی <تصفيق> خدا حالا فهمیدم غیر از تو هیچی چی مطرح نیست میشه دلم رو وحدانیت میشه دلم رو غیر از احدیت تو هیچی دیگه نگیره من غیر از او گل دل از تو بردارم از تو میر. این دل کجا بره و این برکت کنه این تو سرزمین اون اونجا ما میدونیم برای سیر الله بدون دستگیره و ابزار بدون وسیله امکانش نیست. از در تشریعی عنایت رو خداوند شریعت فرسته دید. حضرت نوسا، ایسا، نوم، ابراهیم، پیغمبر اسلام و آخرین شریعتی که ما الحمدلله بهش پابندیم شریعت اسلام. خب خداوند وحر و پیغمبر فرستاد پیغمبر شریعت رو به ما داده. چرا مستقیم به من وحی نفرستاد من ظرفیت ندارم من نمیتونم باید واسطه باشد. اگر وهابیا اشکال میکنن شما چرا به واسطه معترفی مگه در اصل دین شما در شریعت به واسطه معترف نیستی مگه میشه وحی رو خودتون بگیرید با پیغمبر بگیرید به شما بده در مراحل قرب به حد هم همینطوره ما واسطه نیاز داریم یا ای الذین آمنو اتقوا الله و تَقوَ إِلَيْهِ الْوَسِيلَة وَسیله‌ای که به سوی اوست که در روایات اومده این وب تقویله الوسیله یعنی ائمه ها علیهم السلام اون وقت در عرفات متوجه حالت خودم میشن حضرت آدم متوجه شد خدایا می برگردم ابرایل بهش یاد داد به خمسه ی قسم بده من تو عرفات میخوام خدای معرفت پیدا که من دورم با تو نبودم حالا میخوام خدایی بشم. حالا میخوام تغییر کنم زندگیم یه جور دیگه بشه و وقت اونجا به من میگه تجدیده عهد کن دعای عهد هر دوستوب در رابطه با امام زمان علیه السلام تو دوران قیبت تأکید شده عهد هم در قرآن در چند جا اشاره به امامت شده و از ابتلا ابراهیم رفت هو به کلماتن فعتمهن آل علمی جائل و کل ناسه اماما آل و من زرگیتی قال لا ی نالو عهده ظالمی چند جای قرآن نخیالا نمیخوام وارد بشم اون برس ما چیز دیگه است عهد در زبان قرآن و در زبان روایت عهد امامت و خلافته اون عهدی که خدا با امسان دسته لذات حجدید عهد کن با خدا یعنی دل به ولی خدا بسکر لذا یک مکانی که در زمانی که حجاج در اونجا قرار دارن حتما ما علی علیه السلام در اون زمان اونجا تشریف دارن عرفات یعنی در سکن اینا عنایت بفرمایید در ایام حج طف و اون دیگه یکی تو مسجد الحرامه یکی تو خونشه یکی تو مسعاء بین صفا و مروه داره سعی میکنه یکی کجاست تو حتی مشعرم کیفیت ورود و خروج به یک چه باشه شرایط جواب کنه اما و بین زهر تا مغرب در عرفات هیچ که مستثنا بشه یعنی تنها مکانی که هر حاجی برای عمل حجم مکه رفته در این فاصله اونجا وجود داره این عرفاته بقیه همه طبق قاعده استثنا می کاجیره حکم نباشه چی باشه در چه شرایطی بخواد تو مکه بمونه تو منانه که مناسکش تو وجود داره امکانش هست امام عصد علیه السلام فقط یک سلسله ضوابطی که به ماها رسیده هر سال حج انجام میدن هر ساله هر حاجی هم باید اون ساعت و رفاق باشه لذا قطعا بین ازان ظهر تا مدرب امام حفظ علیه السلام تو اون محدوده من حالا اونایی که فوفیر داشتن من گاهی میدیدم تو این سفرها بعضی‌ها یا نفس عمیق میکشیدن. نگفتم قطعا بازنم امام حفظ علیه السلام در این فضا قرار گرفته شاید یه شعایی از بازدم امام با این نفس امیر به جان و دل منم اثر کنه فضایی که فضایی است که مهدی علیه السلام نفس می‌کشه فضا فضایی است که پای حجت خدا در اون فضا نهاده شده فضا فضایی است که امید همه انبیا امید همه اولیا نور چشم فاطمه زهران منتقم حقیقی کربلا تو اون فضا داره سیر میکنه انسان وقت اونجا بگه خدا میخوام تجدعه بازو بکنم یعنی دلوستگیم رو به امام عصر تو سرزمین عرفات میخوام زیاد کنم خمسه طیبه که امروز وارث حقیقیش امام عصر علیه السلامه خمسه طیبه آدم رو در این سرزمین آدم کرد وارث اونها امام زمان در این سرزمین می ما رو آدم بکنه لذا وقتی می خواهیم در اونجا چی بخوایم آدم شدن دل نورانی شدن دل تعبول پیدا کردن عرفات ما چیم میتونیم که توفیق پیدا میکنیم یا نه اون مکانه بریم یا نه روز عرفه که در کنارش شبه قرض با اون ارزش معین شده با اون سابقه تاریخی اونجا توجه به آدم شدن دل نورانی شدن قلب روشن شدن توجه به وضاعف پیدا کردن یک تکانیست در سرزمین عرفات برای اونهایی که توجه به این معانی پیدا کنم و الحمدلله زیاد اتفاق افتاده تجلیاتی که در عرفات افتاده جنبه‌های های معنوی که در اونجا برای بعضی اثر بخشیده این رو هم من ارز میکنم دوستی دارم که من خیلی به او ایمان دارم همونی که ارز کردم قادره نرامی را میرم و میگفت دیشب ارز کردم گفت نگاه میکنم شد قطرات خوند آدمیست که به یه راحتیان حرف است. او اگر من که تو طور این جور قضایای بسواس هم دارم میدونن بعضی دوستان نزدیک نقلم به راحتی هر کارو نمیکنن یه وقت رو کن و مغازه و غیره نشه اما او رو از بس که بهش ایمان دارم این قضیه رو از میکنم یک سفر مکه مشرف بودیم البته این سفر این قضیه ای که رو میگن من رو ندونن ایشون گفتن من به تردید افتادم بین عصب عربستان و ایران تو زید قربان که عرب نیوفتین ادم مفاهات مشترکی هم هست می گفت حالا دیگه چجوری چ جوری با من گفت و از دیگه ای داشت رو می وقتی اففاب میزنمدم گفت من تصمیم گرفتم که از منان برگردم رقات رو وقف دیگه ای بکنم مشق رو وقف دیگه ای داشته باشم و بیام برای منام که احتیاط عمل کرده باشم خیلی مشکل آ بود روجارف توجه دارم اونها وخواابیا با اون حساسیت میگفتن که من رفتم تو منام یه گوشه گرفتن نشستم تو حال خودم میشم میفت معب آدم ج رو نگه گفتن اینجا چه میکننی؟ کمشه کسته به کسته گفتم خاتمی مفقود انگوشتر هم گونش به دنبالش می این اینقدر آدم دقیق هم هست به منم نگفت که من میگم خاتمی مفقود منظورم انگوشتره من فاهمیدم منظور او چیه خاتم من مفقوده که او اشاره به خاتم را او داره گفت طلب منو گرفت پیش شوخته ها شغطه خونه که تو منا هنوش بود خب مثلا این مشغول به نظر میاد خب گفتم برای چه اومد اینجا گ و من نشوندن تو آفتاب توی حیات این شد کنه خیلی طول کشه حالا من دلمم شور میزنه اعمالم چی میشه وقیه مسئله بادابا باد آبا. اتفاقا اون سفر دختر و پسر شما همراهش هم بوده که اونها این انجام نمیدادن اون وقت بود. اینا نمیدونن میشن چی شده و یه مقداری که طول کشید اهل حپا نیست تحمل عجیبی داره گویا یه دفعه دلم شکست گفتم آقا یا سارق زمان من راضی شدم بدم این وخوا های خبی سال تحیل دیگهی هم به کار بود من ج نمیگیرم اینا اینجوری ما رو بیازارن یه خسته شدهن سدم هست و قول خودتون گفت که س این کل کرد و یه گفت یک لحظه نشد این به ذهنم گذشت دیدم و از این درش شد بکنه مثل که کسی چه مقامی داشت نمیدونم وارد شد همینا بلند شدن حالا سردش اون بود کاره بود؟ که اینا در مقابل بود چنان احترام هم که اومد بره نگاه که این چ اونا به عربی چیزایی گفتن گفت فوری من جلو من گفت که چیزینیل داری که من به شدت بود، گفت فوری گفت براش آبمیوه بیار از این در دستا قوطیار خونه آوردن به من دادن گفتن که خب حالا کجا میخواهید برید گفتم میخوام برم به سمت مشعر گفتن بیا سوار ماشین ما بشو ماشین ماشین گفتن این ماشین مسافر تو من نمیام گفتم واسطا گوت چیکار میتونم بکنم گفت من رو ریکاب واسه کوبند بیار ریکابوس تو ریکابوس دادن اینا گفتن آرامندید که چون رولکا واسه من آوادان تو مشهد پیاده کردم خوب طبیعی است اگر عنایت حضرت نبود اون وهابیت اصلا میدید میدید برای انتشار شدن دیدم با اون خشونت این دور حساس بشن اینگونه حالا از این تجلیات که حالا اون اظهارشو گفت حتما چیزهای دیگه بوده که من میدونم نگفته چون آدم خاصی نیست فقط به یه جهت خلاصه سرزمین عرفات و این نصف روز روز عرفه حساب دیگه‌ای داره اون توجه و پیدا کردن اون دل به خدا دادن و از عرفات حرکت میکنیم میای مشعر که مزدلفه بهش میگن در معنای مزدلفه که به کتب لغت مراجعه می‌کنیم از ظلفا به معنی قرب و نزدیکیه خب مزدلفه اون جایی که قرب و نزدیکی باید درش ایجاد بشه قرب و نزدیکی چی باز روایت از امام صادق علیه السلام ادامه همون تکه که خدمتون کندم و جدد اهدکه اندالله تعالی به وحدانیته و تقرب علیه و تقرب مزتلفه به مزتلفه اون قرب و تقوا حالا قرب و تقوا در مزتلفه یه نکته هم داره مستحبه ما در موضوع دلفه در مشعر سنگریزه جمع کنیم برای رمی جمرات حق و قرب رو امام صادق علیه السلام فرمون در موضوع دلفه برای خودت ایجاد کن کما اینکه که در عرفات فرمون اون معرفت و اون آگاهی و خیشتنیابی رو در اونجا توجه پیدا کن حقا مزدلفه دلفه نزدیک شدن وقتی توجه پیدا کردیم در عرفات که خیلی بیچایی و راهی هم نداریم جز اینکه دست به دامن اولیای او بزنیم متصل به آنها بشیم حالا وقتی متصل به آنها شدیم تقویه چی کار میکنه از ماده بقا یی خیشتنداری و نگهداری تقویه رو که پرهیز معنی میکنم این مدار مقدار نقلبه معناس در لغت تقوا معنی پرهیز نیست تقوا معنی خشتنداریه. که اگر بخوام تشبیه کنم تقوا رو ترمز در اتومبیل موتور نیروی محرکت از اوتومویل رو برکت می دازه ترمود اون آمل نگه که اوتومویل رو نگه می داره در وجود ما در مقابل لقزش ها چه نیروی ما رو نگه می داره وای می این تقویه آن اون قدرت نگه ما خب برای نگه داشتن عوامل دفاعی لازم داره وقتی در گبرق زندگی ما رو به سمت خودش می‌کشونه. باید یک اوامل دفاعی داشته باشیم که اونا رو کنار بذاریم خودمون رو نگه داریم نیرون میخواد توان میخواد لذا میگه اون توسل و اون توجه به ولی خدا در عرفات قربی برای ما در این مسیر ایجاد میشه که توجه پیدا میکنیم سلاح لازم رو برای قدرت تقوایی و دفع اوامل لغزش در اونجا پیدا کنیم حالا این البته یک تیکه استحسان هم حتما کنم وجوفی که ما در مشعر یا مزدلفه داریم از اذان صبح تا طلوع آفتاب یعنی اون شروع فعالیت روزمره ما اونجا تا غروب اگه تا غروب موندی شب یک قسمت زیاد که تهجد داره و ارتباط با خدا برای اون به نحوه علاوه رفت بدم حضرت وقتی متقین رو واسط میکنن فرمودن زاهد شبند و شیره روز زاهد شب شب او بین خود و خدای خودش حالاتی داره روز مثل یک شیر قرنده مشغول انجام وظیفه خودشه که بعد میرسیم نه به این معنا که اگر به اون مقام رسید دیگه خودشو بکشه کنار کاری نداره نه روزا مثل شیر داره میگره میاد میدان مشعر تلفه از اذان از صبح تا طلوع آفتاب اما صلاحت برداشت چیه؟ این سا ها حالا که آفتاب زد شروع فا... کجا میریم؟ یک سر همچه منا منا یا منا خب اونجا چی کار باید بکنیم؟ منا از آرزو و تمنا و چیزی رو در ذهن خود در نظر گرفتن و خواستنه خب حالا اومدی منا چی کار میخواید بکنی؟ چی میخواید ب... انجام بدید؟ شما چند کار اساسی در منا دارید؟ مهمش رمی یا جمرات سه تا سنگ رو باید رمی کنید با توجه به اون مناطقی که از اونجا پشتر سر قربانی باد بکنید و توقف خب رنگ جمرات 3 است در تاریخ چش به ما گفتن که از ابراهیم خلیل علیه السلام وقتی فرزندشون اسماعیل گفت بنا شو قربانی کنن پسر رو با خود برداشتن گفتن نزدیکی همین اطراف بیت که مادرشان اون سکنا داشت نباشه بالاخره موقع ذبح فرزند یه ناله ای بلند میشه نکنه مادر حساس بشه یه وقت جمعه های آتفی غلبه بکنه انجام وظیفه پیش نیاد لذا پسر رو یه مقداری از بیت الله الحرام جدا کرد آورد تو سرزمین منا به این جایی که جمره اول جمره دون جمره سوم یا اولا و وستا و عقبه که هست به هر یک از این گذرگاه ها ابلیس پسر رو تحریک می‌کرد، یه جوری وسوسه می‌کرد. چون در روایات هم داریم قبل از بعثت پیغمبر اسلام ابلیس اجازه و قدرت حاضر شدن هم داشت که بیاد تو دل جمع و با مردم برخورد کنه پیغمبر از خدا خواست که بعد از بعثت پیغمبر این قدرت از ابلیس سلب بشه که دیگه آشکاراناتونو ظاهر بشه همون نوجاهاشو رو شاید هم برای خیلی نوچه هاشم کفایت کنه اون قضیه مرحوم میرزا یعقیمی که خواب یکی اومد گفت شب خواب دیدم ابلیس رو که تناوبای دستشه یه سری تناب ها نازوک، یه سری کلوفتر، یه سری کلوفتر، یه تناب خیلی گفتم تو کی هستی؟ اینا چیه؟ گفت من شیطانم. گفتم اینا چیه؟ گفت با اینا میدازم افراد رو سید میکنم. این نازک مال افراد زیرتر، کلوفتره مال کلوفتر، افراد قویتر و این قسمان خیلی قوی مال میزدار قممیه. دیشب سه بار انداختم میزدار رو سید کنم، نشو. گفتم تناب برای من چی؟ تو پول تناب نمیخوای با اشاره یه تناب احتیاج نداری. بعد صبح اومد میرزای قمی گفت میرزا قمیشو گریه کردن گفت راست دیشب سه بار تنابنده. چی بوده قضیه؟ گفت دیشب امانتی پیش من رو که حتتا تصرف نداشتم. مهمانی هم رسید که شام نداشتم متحیر موندم چه بکنیم؟ از یک طرف آبرو دارم شام ندارم، از یک طرف این پول اجازه رف ندارم. سه بار رفتم سر این امانت‌بندزی سانور بردارم بعد جاش بگذارم دیدم شرعاً مجاز نیستم برگشتم بار سوم گفتم میام به محل میگم شام ندارم چیکار کنم من که یه بیش از حد توانمور نیستم قبل از اینکه من بگم خدا کمک کرد و حل شد اما این سه بار ریس من انداختن این سه بار است که به اونجا رفتم و برگشتم خدا ابلیس بعد از زمان پیغمبر بنا شد آشکار نشه قبل آشکار میشد در این سرگذا می اومد. ای اسماعیل رو تحریک میکرد پدر به پسر میگفت بران او تو او با سعی میزر که این کنایه حالا جنبه توجیهی معنوی هم داره و اینکه ما این سه گذرگاه رو هم سمیم میزنیم در احادیث اشاره شده با توجه با آیات هم میتونیم رفت بدیم انسان در سه گذرگاه حساس خطر لغزش ده. این سه گذرگاه که انسان تونست موفق بشه موفقه بازا که جمله ای حال کاری بگوینده ندارم میگه که وصول به شخصیت عالی انسانی امکان پذیر است در صورتی که در گذرگاه‌های گوناگون زندگی چون گوسفندانی که از خارستانها عبور می‌کنند و تکه‌های پشم بدنشون رو می می‌گذارند در گذرگاه‌های زندگی شخصیتمون رو جان گسفند از تو بیابان پرخار داره عبور میکنه هی hey, پشم بدن به خار میچسبه اون سر که میاد بیرون دیگه پشم بدنش نمونده انسان تو گزرگاه های دوناگول که تو گزرگاه پول میلغه یکی تو گزرگاه شهوت میلغزه یکی تو گزرگاه مقام میلغزه یه وقت با خودش میاد خیلی چیزا معتقد بود ولی دیگه با او چیزی نمونده آقا تو که اعتقاد داشتی تو کی دیگه میگفتی چی چیشو این های حساس زندگی لحظون مگه طلحه و زبیر آدمای معمولی بودن به نقل تاریخ یه روزی پیغمبر تو مدینه میومدن امیرالمؤمنین علیه السلام زبیر دستش تو دستش رو دلوش میامد پیغمبر نگاهی کردن لبخندی زدن فرمودن زبیر امروز دست علی رو در دست تو میبینم میاد اون روزی که ببینم شمشیر کشی در مقابل علی زبیر گفت من خدا نیا اون روز رو تا جنگ جمل شروع شد زبیر اومد میدان امیر فرمود به زبیر بگید بیاد جلو من فقط یه حرفی باش دارم زبیر اومد جلو گفت یاده تا پیغمبر روی چی فرمود خب گزرگاه گوناگون زندگی افراد رو عوض میکنه آقا شمر معلم قرآن بچه های کوفه بود قرآن درس میده به بچه های کوفه کار به کجا میرسه مگه عمر صد آدم معمولی بود؟ ابراهیم خلیل که حج ابراهیمی هم برای ما باقی منده مثلا امت ابراهیم که خودش بحثی داره یا ملت ابراهیم که بحثی داره نکسه های بارز در زندگی میگه ابراهیم در از است ابراهیمش در حج ما توجه از ابراهیم هم زیاد داریم. یکی گو در گاهیچان حضرت از ابراهیم را در کنار آتش وقدر یاد بر اثر رخده بودن که نزدیک یمتونندشان راهیو بندازند این حرارت اجازه نمیداد من ساختن ریسافتن دور بتونن پدافند کنن بدرامین میدونه الان از همه قطعه کرده و در رضایت ما اومده جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و بر ملائکه که ای وای چیکار بکنیم علم دو به حال در شده, داره داره شده. در مشکلات این ذکر چند بار بگیر حل مشکلاتش مجربه علمه و حالی علمه به حال من یکی این مقالی که باید کنه که من عرصه دارم او که میدونه من بر چه شرائط یاد. من احتیاج دارم ولی به سماها نه برید دین من روح آیل بشت هیچی به خدا نمید خدا ابراهیم انداختن ساق قدم مون وقت آتش دارش گل اینجا ابراهیم قدوش یک گذرگاه حساس زندگی جان. نزا یک گذرگاه شیطان رفت کردن سنگ زدن آقا اونجایی که یک سلسل حوامل ممکنه جان شما رو تحدید کنه اما در دبال شخصیت والای شما باقی به مانه کدومشو میگیرید آیا سنگ به سوی شخصیتت میزنید اون آمل خودکننده شخصیتت میزنید یا سنگ به سوی اصل شخصیت خودم شخصیت یا آمل خودکننده ای شخصیت این یک گذرگاه گذرگاه بزن گذرگاه ماله شاید در این یا ها از مال راحت از دلکندن از جان باشه گوه در راه خدا بده، کل جان نیست راحت طوانش بیاد، ماله اگر از مال توی راحتی نیمشه گذاشت ابراهیم در امتحان مال هم اشنشون را در چاریخ که ابراهیم اسفان میتونه تو بیابانی که شرک و کفر و الهاد همه جا رو جلسته بود گوه تو بیابان شنید مدای الله این شنان نغمه توحید جان ابراهیم و نواخ یک سری بی‌برونگر گردون تو رو خدای یاری ندار نداره به درکیاسی همه دوستندامو به میاد دوباره شنیدم سبوح و قدوس رب الملائکه من یه زمانی که در 15 قبل مساله شوروی و مارکسیستی در حرف بود گاهی این قضیه یادم میومد این مثال به ذهنم میزد شما شیفته خدا و عشق به حق و توحید و توجه امام حسن علیه السلام برید ماموریتی در مسکو مثلا در شوروی ثابت خب خوف هست و و شرک استو و مثلا خدا من یه دفعه یک این از هر روشه میگن که السلام علی المهدی شما چه حالی پیدا میکنید؟ چی؟ چی شده؟ این صدا از کجا میاد؟ طرف رو منقلب میکنید؟ یا بگن لا الهی منالله ابراهیم نغمه توحید حاضر شد و اسپانده به نفر حاضر شد من هستم ابراهیم اسپانده همانی شما گوسمان برام تحضیل گرفت یه دقیقه رو آلا به قول من بر و من فرشته از فرشتگان الهی هم مهمور بودم طور امتحان کنم از مال چقدر میگذاری نه گوسماندار بردار بردار این امتحان جان امتحان فرزندم که امتحان سومی. پس امتحان مال دلوستگیه به مال دنیا تعلقات دنیاوی که مال دنیا یک شاخص در مجموعش مقام هست تعلقات دنیاوی هست زرق و برق زندگی هست و خیلی چیزا آیا اگر در عرفات عرفان پیدا کردیم در مشعر تقوا پیدا کردیم به قول امام صادق در اثر قرب که تقوا قدرت خیشتنداری و سنگ رو هم تو مشعر جمع کردیم چی رد کنیم از خودمون حالا که برمی گردیم آرزی بر تو. آرزیم که همیشه با داشته باشیم اما این آرزو چی باشه؟ یک نکنه جانمون رو از دینمون بهتر بدونیم دو نکنه مال و منال و در و, و زندگی ما از دینمون برای ما مهمتر باشه ثومی فرزند فرزند کنایه از دل به محدوده خانواده و شعون زندگی اینجوریست دیگه ابراهیم هم در مقام فرزند نشون داد حسری چون اسمایی اونگونه در راه خدا قربانی میکنه لذا این شاخص برای ما منده در منا این سنیزدن ها رو ما داریم یعنی خدایا داریم تمرین میکنیم این رو من که از خودم بگم باز از روایت قسمت رو کردم اگر جنبه روایی نداشته باشه خیلی راحت نمیتونه انسان اینجوری نظر بده اونه اسراری داره مگر بگیم این مردار. این قسمت از امام سجاد علیه السلامه و اندما رمیت الجمار نویت انکرمیت ادو و کردی وقتی که داشتی سنگ میزدی به اون جمره رمگه جمره میکردی نیت داشتی که داری ابلیس رو میزنی فایی که سنگه سنگ ابلیس نیست ابلیس هم که ظاهره مخفیه نه این سمبوله این نشانه است او خانه همی جوید و من صاحب خانه توجب اون کیفیت و معنا داره لذا گفتن در شرح حدیث ظاهره ثبون یا چهارم از باب عقل و جهل اصول کافی حدیثی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید به اندازه اقل و درک افراد پاداش و عقوبت هست تو به بغل و جهن. چی می‌فهمه یک این سنگ که داره می‌زنه وارد هستش می‌درزه خدا من تو زندگی اینجوری می‌تونم شیطان رو بزنم یا یه بسته اسکناس من ناس منو عوض می‌کنه یه عنوان جناب فلان من برابر می‌کنه یه میزم یه کمی بزرگتر بشه من از این رو بونرو میشم یه دونه مثلا تعلقات ظاهری زندگی منی از وقتی من حاجی ام حاجی یعنی غصب خدا کرده لله علی الناس یه جل بیت بیت خدا به عنوان نشانه خدایی است در روی زمین وگرنه همه جا سنگ بچو اگه با معنا باشه و خب مساجد حاجی شدن قصد خدا کردن غصب خدا کردن دیگه میز براش معنا نداره دیگه عنوان براش معنا نداره اینتون منا با چند روز تمرین کردن و زدن که متوالی از دشمن پرسیدن نطرح میشه اون وقت قربانی کردن هم در کنارش داریم که قربانی دو جنبه پیدا میکنه یک جنبه از باب الحمدلله شکر نعمت که انسان توفیق پیدا کرده قربانی میکنه مثلا خداوند در قرآن به پیغمبر اسلام میفرماید فصل لرب بکن و نهر این نشانه که ها ولدتر این ناعته ای ناکل کوسر حالا که ما کوسر به تو دادیم به شکرانش برو قربانی. کن اینه انقدر این نعمت ارزنده بود که باید قربانی بکنیم یک معنای این خدا ما دیگه انشالله خدایی شدیم به شکرانش داریم قربانی بکنیم یک معنای شدیم باشه یک معنای دیگر که در حدیث بیشتر اشاره شده همونطوری که کارت رو میذاریم رو گلوی گوستن یا ناید گرفتیم کارو کار بکنه یا ما ناظریم این توجه رو داشته باشیم گلوی تمه رو دیگه بگنویم این این حدیثی که بعد میخونن گلوی تمه در احادیث ما اومده چند گناهی که ریشه گناه یکی که بره که ابلیس رو از اون درجه ساقت کرد ابلیس معمولی که نبود که 6000 سال عبادت کرده بود. ولی وقتی که در او قدرت گرفت انا خیرون من ها ابلیس رو ابلیس کرد یکی تمه که در حدیث امام علیه السلام فرمودن تمه در بهشت حضرت آدم رو بادار کرد و بقیه خب تشتیم میخورده دیگه خدا فرمود کلو اینا رو استفاده کن ولی خقره با این این شجره تکون من از ظالمین این درخت رو نازک نشید به یه معنا حالا تمای در اونجا که گناه نیست تل پولات در ابتدا آدم گناه کرد اینجا اشاره کرده امام علی السلام وقتی شما گذاشتید کارت در گلوی این قربانی توجه کنید که گلوی حمع رو دارید ذبح میکنید و میبرید و از میان میبرید لذا حمع در زندگی بیچارگی هایی برای انسان ایجاد میکنه که بعد از همه اون در عرفات و مشعر و مسئله گربانی کردن که انشالله انسانی همه رو کنار بزنه خب حالا برگشتی مکه دوباره تواف داری دوباره نماز پشت مقام ابراهیم داری سخی صفا و مربه داری تواف نسا داری در اونجا من خیلی سریع بگم چون مخوام یه قسمت دیگر رو بگم بیانیست از امام سجاد علیه السلام میگه وقتی شما این کار کردی برگشتی میدونی چه توجه باید رو بکنی؟ و رجعت الى و تمسکت به ودهی و عدیت فرائزهو و تا ال الله تعالی انسان گاهی در مقام بندگی و عبادت قرق در راز و نیاز الهی که میشه دیگه بقیه رو فراموش میکنه کجا میرسه؟ میگه اما باز برگرده این برگشتن چگونه برگشتنیه شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید حضرت فرمودن فلانی شنیدم کلاسی که برای دیگران داشتی تعطیل کردی از که بلااهم نمیفهمدن خسته شد حضرت فرمودن خب اگه اینجوری باشیم، ما من کلاسونو باید برای شما ترتیب و اون طرف فرمودن حالا ما برای شما کلاس گذاشتیم انگار خیلی میفهمی کلم الناس لاقدره اووله لذا چون سر کار تو با کودک فتاهم زبان کودکی یاد باید بیان تو دل مردم پیغمبران چگونه با مردم عمل می حضرت زهرا سلام الله علیه ها در حال زندگیشون وارد شده خانمی در مدینه اومد خدمت حضرت مسئله ای پرسی حضرت 13 بار توزی دادن طرف نفهمید خجالت کشی بیبی شما رو کردم اجازه بدید من مرخص بشم هم فرمودن من اذیت نشدم تو اگر توان نداری بحث دیگری اما تا داری من ادامه بدم شش بار دیگر ادامه دادم بار نوزدهم طرف سای گفت متشکرم که تعبیر من خدا به شما جزای خ بده بینش و نگرش رو نیت بفرمایید از از فرمودن نه من با دست تو تشکر کنم چون تو باعث شدی من به این اجر آموزش یک مسئله از مسائل دینی برسم. 19. یعنی حالا که رسیدی برگشتی بیا برگرد برای انجام فرائزه کدوم فریزه از ارشاد، هدایت، دستگیری، کمک به دیگران یه حضور باری که حالا کارهای معمولی جو هم انجام میده تو خونش یه ذهن میزنه آقا خواب من تعبیر کنه آقا این استخاره رو برای من مثلا بگیر آقا فلان آقا فلان مرحبی هم داره بیمارم هست یا وقت من خودم ازشون پرسیدم شما اخی این مقدار به این جور مراجعات پاسخ میدی شاید در جسمی گفت اون قل که در دین ما دستور داده شده مشکل مردم را حل کنید تأکید شده که من خودم مجاز نمیدونم ولی این مقدار میتونم مشکل مردم را حل کنم. مطاله از من این مشکلات بر میاد تو مشتلات حل کنم. لذا نه حالا رفتی غرق شدی در سیر ال من دیگه چیزی دیگه برای مطنبیات و دل مردم. با مردم حرکت کن با مردم باش که اینجا اشاره اینجوری هم دست مردم رو بگیر مشکلات مردم رو حل کن که این حل کردن مشکلات مردم شعون فکری، شعون ارشادی، شعون مالی و غیره میتونه داشته باشه این یک سیر اجمالی در به اصلاح جنبه های اخلاقی و مقنوی مناسک هش که جنبه های فرهیش هم انایت داری که یک اشاره یه نسبت به مدینه دیگه. در ندینه جنبه واجب کار کردن ما نداریم جنبه زیارت داریم که مستحبه اما زیارت رو عنایت بفرمایید بنده یک استادی دارم فرش کنید مثال می‌زنم انقدر برای من زحمت کشید انقدر نیرو صرف کرده از خوابش زده از آسایشش زده از مالش زده از جانش زده من چند رو یاد بگیرم منم واقعا میدونم که این استاد دلش برای من میسوزه و میتپه و داره میسوزه که چهار نفر آدم گوشت کنن بیان بالا امروز الان میخوام برم در خونه استادم در بزنم توی راه درو گفتم خدای نکرده غیبت کردم فوش دادم مال مردم رو خوردم به ناموس مردم نگاه کردم الان که دستم گذاشتم رو زنگ در خانه استادم یه دفعه متوجه میشه استادم من همه چیز خبر داره الان که در رو باز میکنه تا چشمش من میفته چه حالی بدام میکنه میگه توی یکی همه برات زحمت کشیدم تو همینجوری نمیشود نگاه به ناموس مردم نکنی؟ نمیشود فش ندی نمیشد درو وقت چه حالی من؟ دست که میخوام بذارم رو زنگ گاهی میلرزه نه زنگ نزنم اخه نمیشه الان با دارم پیشش زنگ بزنم همینجور اون حالت شرم و که در چهره من شما حدشو بزنید حالا استاد در وا کنه تای نگاهی به من بکنه اگر به زبان بیاره که دست شما درد نکنه، تو همینجوری پس چه کنیم تو این جامعه. من تا اونجا من گردنم رو کج کنم. اشک از چشمام جاری بشی آقا. بله واقعا بد کرده، نمیخواستم این کارو بکنم. اما شما رو به خدا منو نرانید. باز دستمو بگیرید. چون شما اگه من رو از این در برانید من دیگه جایی ندارم برم اون وقت بدبخت‌تر میشم. حالا دست منو بگیرید من ان شاءالله جبران میکنم. او یه دست نوازشی رو من بکشید دست منو بگیره و بره ما چند معصوم در مدینه داریم پیغمبر فاطمه زهرا و چهار امام شش محصوم آقا اعتقاد ماست الحمدلله این باور رو کرده ایم که محصوم زنده و مرده نداره همه چی برای اونها آشکاره از دخول اون زنگ زدنه رسیدیم در خانه فاطمه زهراب رسیدیم در خانه پیغمبر رسیدیم در خانه امام مجتبی و امام صادق و امام سجاد و امام باقر حالا میخوام دستمو بذارم رو زنگ در خانه این بزرگواران در بزنم اونا می دونن که من چه کردم اگر این درو در که وا میکنن یه نگاهی در اون عالم معنا به من بندازن شما شیعه دیگه چرا شمایی که ما رو قبول داشتید دیگه چرا اونجا اون وقت چه من چگونه میتونم وارد بشم مگر اینکه که این توجه رو پیدا کنم شما معلمین ما اید. شما وسائل سیر الله هستید شما اید که دلارو روشن میکنید شما اید که دنیای ما رو عوض میکنید شما اید که اگه دستی به سر صورت ما بکشید به قوله مرحوم آیت الله کمپانی مفتقر آمد روی از در او به هیچ سوی زن که مثل وجود را فضه او طلا کند مثل وجود مثل شما باید طلا بشه اما حالا اومدم با گردن کش بگم که شما را به خدا دست ما را بگیری. لذا انایاتی که اونها در این زمینه میکنن با این توجه انسان به زیارت بخواد نگاه کنه باید یه مقدار ابتداش بکنه اون حالت شرم رو بگیره اون حالت تثر رو بگیره. اونا زندن اونا بیدار هست اونا همه چیز را میبینند حالا اگه من بخوام برم نزدیک خبر کنشده فاطنه زهرا سلام علیه ها بگم بیبی جون نظر زهرا بگه تو با شیایی من چیکار کردی آیا زعفای شیایی من دست رو گرفتی بیچار های فکری شیهایی منو توجه بهشون داشتی لذت چه میکنیم؟ از همین حالا تصمیم میگیریم ما این زنگ درباره که بزنیم معترفیم که چه کردیم تو مدینه که اونا انشاالله یه دستی به سر روی ما تو مدینه بکشن که دل ما تکانی بخوره با اون تکان دل وقتی محرم شدیم انشاالله سیر الله داشته باشیم این یک نکته در مدینه که حالا برای شروعش ما تو ماه زلقه هستیم در اون ماه زیغده اولین یک شنبه ماه زیغده نمازی داره به نام نماز توبه نوعاً آشنایی تو مفاتی هم هست آداب ماه زیغده رو پیدا بکنید نماز روزی یک شنبه که به نام نماز توبه معروفه این نماز رو بخوانیم. یعنی از الان داریم اینجوری میگیم خدایا ما میخوایم بریم در خانه اولیای حقیقی ما اون بچه که از را رسیده پدرش میخواد بیاد دم در بگه چرا این شیطنتو کردی داری میای خونه من میخوام از الان از قایم شروع کنم از یه ما دیگه 20 روز دیگه برم مدینه از الان میخوام از قایم شروع کنم اولین یک شنبه زی نماز توبه رو میخونیم. از حالا انشالله به میزانی که فرصت داریم ذکر استغفار های جمعه های توبه و انابه و انشالله الله ورود به مدینه با این بینش نزدیک شدن که ما میدونیم شما همه چیز مایه میدونید ولی حالا میخوایم انشاءالله با اون نظر انایتون یه دست نوازشی به سر روی ما بکشید که ما حال دیگه ای پیدا کنیم گفت خدایا اگر گناه میکنم به خودت قسم از روی با تو نیست از روی جهالت و نفهمی و نادان ما در خانه امی داد رو بزنیم اگر کوتاهی کردیم اگر در معرفی شما نخوشیدیم اگه در دفاعی از حقوق شما سستی اینم بگم اب نداره که دلتون بشکن برای از زهرا سلام الله ها و انشاءالله مدینه با اون دل شکستگی و از ذنا ترسول پیدا کنید چون طرف گفته بگوی میگم. در اسفهان الان هست یکی از وعاز و منبری های اسفهانه خودش میگو گفت من رفتم در کردستان سنندج سخنرانی کنم راجع به وحدت شیعه و سنی او ما دو نفر بودیم خونه یکی از پیر مردای شیعه سنندج این آقا هم زندست اسفهانه بپرسید خودش میگه بگو این گفته بگید که شاید من آموزیده بشم چون این خوابم دلیل که شاید انشالله صداقتی داشته میخ گفت ما وارد خونه یه تاجر شیعه پیرمرد سراندجی شدیم شام داد پذیرایی کرد بعد از شام قرار شد ما بریم مسجد جامع سخندانی کنیم گفت من پشمم بد می‌بینه شبم کمتر و قدرت ندارم بیام مسجد اینم کلید در خونه این اتاق هم رختخواب شما رو پرین کردم کارتون تام شب یه دین اتاق استراحت کنید اون زمان هم مشکلات کردستان هم همده و این مخالفین و این حرفان بود یعنی راحت تو کوچه و خیابون گوه ما رفتیم مسجد اون آقا گفت تو منبر برو من گفتم تو منبر برو بالاخره به من گفت برو منبر من رفتم منبر خب یه دسته سنی نشسته بودن یه دسته شیعه من آقا خودمو گم کرده به جای اینکه حالا که به نعل و میخ بزنم از عمر تعریف کردم خودش گفتم وقتی از منبر پایین اومدم خودم هم فقط میدم آخ تو این گذرگاه در یه تعریف عمر عمری که اون کیفیت رو ایجاد کرده این که من نمی‌تونستم اما بر تعریف اومر کردم اومد این پایین الا با یک حالت خود این ابسوردگی شدید باعث شده که انایت کردن گفت خودم شرمنده بودم فهمیدم چه کردم اومد این کلید داخت رفتیم تو تواتها گفت رفتم تو رختخواب دراز بکشم دیدم تکتیک صدای اماد با گریه این پیرمرد صابخنه گریه میکنه سا می از میاد بالا اومد بالا اومد بالا گفت این آقا کجا چون چش هم پول نمی بینیم گفتم خونم برو بیرون خفتم چرا خممه؟ می... گوه خونه خونم برو بیرون حالا ناله میزنه میگه برو بگلتم چیه؟ گفت من شما رفتید خوابیدم تو خواب ازت زهرم سلاموند علیه ها رو دیدم فرمود کسی که دشمن منو رو تعریف کرده تو خونم جا میدی من محال این شب بگذرم تو خونه من بخواد گفت هرچون رفیق و ساست کرد آخه امشب توی کجا گفت به خدا قسم نمیذارم تو فاطمه درمان راضی نیست گفت ما رو بیرون کرد من شب اومدم فرمانداری خوابیدم صبح برگشتم اسبه هم هنوزم ناله میزنم خود این آقا داره میگه حالا اگه من بیام در مقابل قبر فاطمه زهرا در مقابل قبر امام حسن مجتبی، که دلش خون شده برای اینکه حقیقت اسلام به من و شما برسه کوتاهی کرده باشیم سستی کرده باشیم گامی بر نداشته باشیم من چگونه بیام بگم سلام بر شما ای اولیای خدا؟ اینجا و این حالت انابه و توبر از الان بگیریم اونجا قصد کنیم که انشالله میخواییم دیگه تو مسیر و اونها باشیم با این قصد دل ما رو نورانی کنن به خودشون قسم اگه اهلش نیستم اینو میفهمم اونا اگر یک جرقه ای در دل ما بزنن همه چیز حله اگه یک روب از کانال اونها به قلب ما دریچه ای باز بکنه همه مشکلات حله لذا توقف در مدینه با این توجه زیارت کردن که اولیا الهی هستید خدا شما رو قرار داده که دست افراد رو بگیرید و رشدشون بدید و ما اومدیم که رشد کنیم اما میدونیم مستحق دستگیری نیستیم شما دست ما رو بگیرید در اونجا است، قرآن خوندن حد تل انسان میتونه در مدینه قرآن بخانه مناجات خمسه شرم که این خیلی تاکید شده از بسیاری از بزرگان من شنیدم نسبت به مناجات خمسه حساسیت نشون بدید و اوجا تا فرصت داری این مناجات خمسه رو تو مفاتی هست تو کتاب دعا اومده این خونده بشه سلوات چارده معصوم که هر روزی اختصاص به معصوم میداره که این سلوات هم باز تو مفاتی اومده که هر روز ما لاعقل صلوات مربوط به هر معصوم رو در اون روز در مدینه انشاءالله این صلوات رو بفرستیم توجه و دعای به امام عصد علیه السلام مقصوصا دعای فرج و اون دعای اهدوینا که جز آداب روز بعد از نماز صبح است انشاءالله انجام میدید دعای فرج امام زمان علیه السلام رو زیاد تأکید کردن و این رو هم من از بزرگان دارم عرض می‌کنم خدمتون قبل از توجه به امام عصر و دعا و ودخواستن ولو دو بیتم شده اشارهی به مسائب عزت زهرا بکنید بعد از امام زمان بخواید چون خود امام عصر علیه السلام اونقدر به این مسئله اساسیت دارن یکی خوابی که از ایشون دیده شده یکی هم که در روایه ها که مده مال بعد از ظهور عرض می‌کنم یک خواب سید بزرگوار است از علمای بزرگشی چاپ هم شده تو کتابا اومده میگه شب اید غدیر امام حسن علیه السلام رو خواب دیدم دیدم زانو قم رو بغل کرده افسرده است عرض کردم آقا شب عید شما خاندانه چطور شما متأسره هستی فرمودن بعد از بیت الاحزان نگه برای ما اید واقعی مونده نه در شب اید هم امام عصر در رابطه با بیت الاحزان محزون به نظر می اومدن قسمت بعدی که تو احادیث وارد شده میگن امام بعد از این که ظهور میکنن مائتلفات میکنن به سوی مدینه میان با اون عزت و جلال وارد مدینه میشن ولی یه دفعه تو یه مکانی در مدینه حضرت پاهاشون میلرزه میشینن و زار خار شروع میکنن به گریه کردن اطرافیان تعجب میکنن که ای ابن رسول الله حالا که دیگه روزی گرجری شما که فتح فرق کردین فرود اینجا مکان است که مادرم رو در این مکان سیدی داده حساب بعد از ظهور و در اوج قدرت هم امام علیه السلام در مدینه توجه به اون مظلومیت دارم من استنباط همین نمیدیم حتما اینه شاید توجه شدید امام زمان علیه السلام به مظلومیت از زهرا این باشه که اولین مبلغ و اولین مدافع و اولین شهید و اولین خداکار امامت حضرت زهرا سلام علیه ها بعد از پیغمبره اون کسی که بعد از پیغمبر این رو سپر کرد در دفاعی از ولایت و امامت حضرت زهرا صلی اللہ علیه و امام الزمان آخرین امام و بقیت الله و خاتم الاوسیاه در این رابطه هستند و لذات توجه و زهرا سلام الله ها دریشون هم زیاده و اونای هم که معرفت دارن یک خاطره یا من تو مدینه دیدم بگم این مال قبل از که یه سفری مشرف شدن یه خانم فهمیده مطلع اهل فضلی وارد شده بود از این باب جبرائیل اون زمان زن و مرد با هم وارد می شدن. بعدها اینجوری که اطلاع دارید مثل خود حرم ممرضا غیره زن ها جدا آقای جدا جداگاهی زمانش هم جداست. این خانم از باب جراحی که وارد بشید ان از نزدیک دوستانی که مشرف نشودن میبینن این ذریعی که گرفتن یک قسمت خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است که در اون ذریع واقع شده یک قسمت خانه خود پیامبر که الان قبر خود پیامبره برخی احتمال میدن احتمال قوی که حضرت زهرا تو همین خونه دفن شده باشه که کنار قبر پیغمبره که الان دورش ذریه از باب جراحی که وارد بشیم رو برو با یک کمی انحراف این خانم چند تا ایستاده بودن اون زمان هم خشونت و سخ زیاد بود حتی با شلاغ این ها می زدم کسی نزدیک بشه این خانم مثل که نتونست تحمل کنه نزدیک شد به این در چنان این طرف با شدت این شلاغ رو به طرف زد که خانم بیهوش شد خانم که دورش دورشه گرفتن خود اون طرف هم یه مقداری ترسید، اما به محضی که خانم روش اومد دیدم که این اطرافیان نگران بودن. او با یک حالت خاصی این جمله رو ادا کرد مگه میشه شیعه فاطمه زهرا آواشد بر در اینکه فاطمه رو کتک زدند و منو بر این در کتک نزنم و من افتخار میکنم که این مقدار ریاضت رو فاطمه زهرا به من داردن که در خانه او منم تازیانه بخورم تا یک مختصری از مظلومیت این خانواده رو در مدینه حس کنم میگه در مدینه بودیم یکی از اصحاب خاص امام صادق رمیه السلام اومد خدمت امام صادق آقا مشکلات مالی دارم گرفتارم حضرت فرمود بنشین انشاءالله خدا حل میکنه لحظاتی بعد کسی از را رسید آقا مشکلاتی دارم حضرت پولی بهش دادن رم طرف چیزی نگفت فقط به آقا عرض کرد آقا خیلی گرفتارم من فقط پناهم شمایی حضرت فرمود بنشین خدا انشاءالله حل میکنه نفر دیگری آمد آقا مشکلاتی دارن حضرت چیزی به او داد او را. این طرف دیگه تحمل نکرد حضرت یبنه رسول الله شما میدونید من شیعه دلباخته شما الان مدتی هم اینجا نشستم گرفتارم شما اونا رو راه ام به من توجه نکردید حضرت فرمودن تو رو دوست داشتیم می اینجا بمشینی که ما رو بیشتر ببینیم ما هم تو رو ببینیم اونا وقتی دوستمون داشته باشن گاهی ممکنه لازم باشه یه شالله رو تو سرمون بخوره که با درد اون شالله بگیم ما گوشه از مذنبیت شما رو هم داریم حس میکنیم لذا مدینه رو دست کم و ارزون نگیرید مدینه قبل هم یک اثری داره همین که انشالله شستشو بشیم با آب ولایت این خاندان و با توجه به اون بزرگواران حرکت کنیم به سوی مکه انشالله که اون سیر معنوی در ما ایجاد بشه همونطوری که جسم ما برای نشاط پیدا کردن و سلامتی و شادابی بیشتر یک سلسله تمرین و تغذیه داره روح ما هم تغذیه و تمرین داره این زیارت و اون اعمال و مناسک تقضیه و ورزش روح ماست که امیدواریم با توجه مولایمون امام احس اروع له الفدا این معرفت و این توجه ایجاد شود با حج مقبول و سعی مشکور، و الله با برخورداری از انایت مولایمون امام با دست پر برگردیم و سلام علیکم و رحمته